سحیفه معرفت شرح دعای هفته هم سحیفه سجادیه توسط دکتر محمد اسدی گرمارودی جلسه شانزدهم بسم الله الرحمن الرحیم الحمد لله رب العالمین و صل الله علی نبینا و آله تیبین الطاهرین المأسومین لاصی ما بغیت الله فی الارزین در دعای هفدهم صحیفه سجادیه که جلسات متعددی است با هم به گفت و شنود مشغولیم امام علیه السلام عامل مهم تحریک وسواس نفسانی برای حرکات ناپسند انسانی را معرفی میکنند که در رأس آنها نفوذ شیطان در دل ما انسنهاست حضرت به نکات فراوانی در رابطه با شیطان که دشمن ماست و میخواهد در قلب ما نفوذ کند و میخواهد ما را وادار به اعمال ناشایست کند معرفی فرمودند و توضیح دادند ضمنا برخورد ما با شیطان و چگونگی رفتارمون برای زدودن شیطان از قلب را به ما معرفی فرمودند تا به این عبارت رسیدیم که فرمودند اللهم و ما لنا من باطل فعرفناه خدایا از تو میخوام اون چرا که شیطان از باطل برای ما زینت میکند و میاراید و آراست جلوه میدهد فعرفناه پس آن رو به ما بشناسان شیطان کارش شیطنت است تصویل است یعنی باطل را در قالب حق جلوه دهد از خدا می که ما را معرفتی انایت کند که این کار شیطان رو شناسایی کنیم اما در ادامه بحثی که این جلسه باید با هم پی بگیریم این عبارت است و ازا ارفتناهو فقناهو و هنگامی که و چون که شناسندی به ما پس ما را نسبت به اون معرفتی که برای ما حاصل کردی نگاه دار یعنی چی؟ معرفت بسیار ارزنده و از ویژگی قابل احترام ما انسون ما میگیم انسان با بامعرفت، انسان بیمعرفت یک زمان معرفت رو مطلق در نظر میگیریم شناخت، آگاهی، بینش داشتن، اطلاع پیدا کردن توجه دقیق و امری پیدا کردن اما یک زمان <تصفح> برای این معرفت قیدی میزنیم معرفت چی؟ معرفت زندگی، معرفت نسبت به دوست معرفت نسبت به خدا معرفت نسبت به عالم معنا معرفت نسبت به زشتی ها و بدی ها، معرفت نسبت به شیطان و اعمال شیطانی پس هر معرفتی اگر چه ارزنده است اما معرفتهایی که در مسیر حرکت انسانی مفیدتر است مسلماً ارزش بیشتری پیدا میکنه. مثلا بنده معرفت این که هدف زندگی من چیست نداشته باشم معرفت این که یک زندگی سالم انسانی چگونه باید باشد این معرفت رو نداشته باشم حالا اگر امکانات زیادی پولم دارم خونم دارم اتومبیلم دارم دوستان فرابانیم در کنار من باشن ولی وقتی من معرفت ندارم که چگونه باید زندگی کنم خواه همه این عوامل، در مسیر غلط کار رفتن به کار میره پس اول معرفت پیدا کنیم نسبت به اموری که بیشتر نیاز داریم اگر شیطان دشمن سرسخت ماست نمیگذاره حق را بفهمیم و میخواهد باطل رو در دل ما جلوه دهد در عبارت قبلی هم حضرت فرمودند شیطان تصویل می کند یعنی باطل رو زینت میده میآرایه تا ما رو فریب بده خب ما پس این امر رو باید بفهمیم معرفت پیدا کنیم که گول نخوریم توجه نسبت به این امر داشته باشیم اما معرفت به تنهایی کافی است یا معرفت برای این است که در مقام عمل اعمال کنیم اگر معرفت رو به مرز عمل نکشانیم این که سمری نداره ببینید به این مثال انایت بکنید فرض بفرمایید بنده کسالتی دارم داروی قضایی الان روی این میز گذاشته شده درمان درد من در این دارو یا قضاست یک بنده این معرفت را ندارم خب نگاهی که به این دارو و قضا میکنم نگاهی است که به بقیه اشیاء می کنم دلم خاص میخورم، خورم نمیخورم، رابطه خاصی با این شی پیدا نمی کنم یا به عبارت دیگر حساسیت مهمی که باید بین من و این شی الان برقرار بشه برقرار نمیشه خب این طبیعی است که به جهت جهل و عدم معرفت اما اگر به من معرفت دادن به من شناختند منو آگاه کردن که این شیع یک همچه آثاری داره خب طبیعتاً این معرفت یک مرحله منو بالا میبره پس توجه من به این اشیا با اشیای دیگر فرق میکنه این درمان درد من است این میتونه مشکلات جسمی منو برام حل کنه ولی این معرفت اگر به عمل تبدیل نشود باعث تعجب نمیشه میگه اگر شما میدونید این دارو دردتونو درمان میکنه پس چرا نمیخورید اگر میدونید این غذایی که الان درست شده رو میز گذاشتند میخواد مشکلات جسمی شما رو برطرف کنه پس چرا نمیخورید معرفت برای عمل حدیثی از امام صادق علیه السلام در کتاب بهار جلد یک صفحه 206 نقل شده لا یقبل الله عز و الا عملا الا خدا بمعرفه خداوند عملی را نمی قبول نمی کند مگر با معرفت باشه پس یک عمل دوتاست عمل جاهلانه عمل توعم با معرفت عمل جاهلانه تونه مخرب باشه تونه آثار سو بگذاره لذا عمل مورد قبول خدا نیست پس عمل ارزنده عملی است که باید با معرفت توعم باشه یعنی آدم بدانه چه کاری رو باید بکنه چگونه باید این کار را انجام بده امیرالمؤمنین علیه الصلاة و السلام در کتاب قرر الحکم نقل شده به جناب کمیل که از صحابی لایق و ارزنده اون حضرت است فرمودند یا کمیل ما من حرکت الا و ت فیها محتاج الی معرفه ای کمیل هیچ حرکتی نیست مگر اون که تو در آن حرکت نیازمند به معرفت هستی چون حرکت و تلاش درسته که لازمه موفقیت انسان حرکت است. باید تلاش کنیم. بیکار نمیتوان نشستن. برای هر خواسته ای اگه میخوام آلم بشم باید خوب کار کنم. اگه میخوام پول در بیارم باید خوب کار کنم. اگه میخوام یه انسان لایق ارزنده بشم باید خوب کار کنم. اما کار کردن چه نوع کار کردن؟ برخی کارها خرابکاری است. برخی کارها امرضایه کردن است. اگر کارم بخواهم عمر زایع کردن نباشد چه کار باید بکنم باید معرفت پیدا کنم که چونه عمل کنم لذا این حدیث امام صادق علیه السلام فرمودن لا یقبل الله عز وجل عملا الا به معرفه خدای عز وجل عملی را نمیپذیرد مگر اینکه با معرفت همراه باشه ولا معرفت الا به عمل معرفت هم نیست مگر به عمل هم جوری که عرض کردم اگر بنده بگم میدانم که این دارو برای سلامتی من مفید است پس این معرفت میدانم میگم خب این عمل درش نباشه هر انسانی تعجب میکنه میگه پس چرا استفاده نمیکنی چرا عمل نمیکنی پس ولا معرفه الا عمل فمن عرفه دلت معرفتو علل العمل اون کسی که معرفت پیدا کرد مطلبی را شناخت نشانه معرفتش اینه دلت هو معرفت. اون معرفت دلالت می کند راهنمایی می کند به سوی عمل چون خود معرفت او رو بادار میکنه که دست به عمل بزنه. و من لم عمل فلا معرفت الله. پس کسی که عمل نمی‌کند، پس در واقع معرفت لازم رو ندارد. چون اگه معرفت داشته باشه پس پس عمل بکنه. خب پس لازمه معرفت درست عمل کردنه حالا بیایم سراغ این فراز دعا. امام علیه السلام به خدا عرض می‌کنند که اللهم و ما ساوللنا من باطلن فرفنا و خدایا اون تصویل هایی که ابلیس میکنه، شیطان باطلهایی رو که داره زینت میده تا مرا بفریبه از تو میخوام که به من معرفی کنی اما ادامهش و ازا عرفتناهو اما از تو میخوام منو یاری کنی که اینجوری بشم که چی بشه ازا عرفتناهو وقتی تو به من شناسوندی اون را چی را تصویل ابلیس را یعنی اگر این کاری که الان نفس من میگه کار خوبیه اینو شیطان تصویل کرده مثلا میگه فعلا این دروغ بگو تا این نفعو ببری دروغ بد است هم عقل و وجدان و فطرت نمیپذیرد و هم پروردگار عالم دروغ رو بد معرفی کرده انبیا و اولیا بد معرفی کردند ولی وقتی وسوسه های نفسانی من به من میگه اگه دروغ گفتی این سودو میبری اگه دروغ گفتی این فایده گیرت میاد اگه دروغ گفتی فلانی نمیتونه اذیتت بکنه این همون تصویله خب حالا این تصویل در درون من ایجاد میشه من از خدا بخوام که یاریم کنه بفهمم حالا خدابند کتابی سر راه من قرار میده میخونم اینا رو میفهمم استادی سر راه من میگذاره اون استاد برای من توضیح میده پای یک گویندهی میشینم با یه سخنرانی دقیق منطقی به من میفهمونه اینه پس این عرفتنا شد به ازن الهی کانالی قرار گرفت مطلب رو من فهمیدم حالا فهمیدم چه بشه و ازا عرفتناهو فغناهو منو نگهدار گفتیم تقوی خیشتن رو نگه داشتن حالا منو نگهدار یعنی من هیچ اقدامی نکنم خدا یا تو مرا نگهدار که من دست به هیچ عملی نزنم مسلما اینکه جبر می شود کرارا توی این دعا ارز کردم خاسته از خدا در دعا به این معنی است که زمینش رو خداوند از باب توفیق از باب لطف و امداد برای ما چون میخواهیم فراهم کند چون میخواهیم اگر نخواهیم خداوند همین رو هم چون ما نخواهیم به ما نمیده لذا از این کلمه فقناهو که از خداوند داریم کمک میگیریم ببینیم ما دو تا نکتر رو باید درخواست کنیم یک داریم از خدا میخوایم ما خدایا به ما بشناسان پس توجه پیدا کنیم که باید بفهمیم دومی میگیم خدایا حالا که ما این رو به ما شناسوندی فقناهو کمک کن ما رو که ما رو از این عملی که بر اساس تسبیل شیطانه باز بمونیم خیلی خودمونو دور نگه داریم عامل نشیم نسبت به خواسته های شیطان امداد الهی در قدرت فهم و عمل ما فهممون مربوط به نیروی درراکه ماست عقل نظری ما عمل ما مربوط به عقل عملی می شود عقل نظری هست ها و نیست ها رو معرفی می کنه مثلا این قدرت فهم ما الان ما در جمعی نشسته باشیم کسی بگه خدا هست روح هست قیامت حق است، پیغمبران و امامان برگزیدگان خدا هستند اینا, اینا همه نسبت به هست. حالا کسی در اینجا بگوید خدا نیست قیامت نیست انبیا و اولیا فرستادگان الهی نیستند قیامت حقیقتی نیست خب من از کجا قبول کنم هست را به پذیرم یا نیست را اینجا عقلی که خدا به من داده عقل نظری به کمک معلمین مربیان انایات الهی که در مسیر زندگی من برای من قرار میده این معرفت رو این فهم رو پیدا میکنم این قسمت اوله در قسمت اول خیلی وقتها یا ما معلمینی که سر راهمون قرار میگیرن قدرشون رو نمیدونیم کسانی که میخوان به ما بیاموزن کفران نعمت میکنیم خدا بنده میگه وقتی استفاده نمیبرید پس چرا این امداد رو دیگه شامل حال شما بکنم فرازی در نهج البلاغه از امیر المؤمنین علیه السلام نقل شده که خیلی این فراز دل انسونها رو به درد میاره و حقیقتاً انسان وقتی به گذشته و صدر اسلام برمیگرده اظهار تعصف میکنه امیر المؤمنین علیه السلام فرمودن لا رأی لمن لا یطاع کسی که اطاعتش رو نمیکنن حرفاشو گوش نمیدن، دستورال عمل هاشون لا ریه برای چی نظر بده، برای چی حرف بزنه. در مقام تشبیه و تمثیل عرض کنم شما به این مثال بنده دقت کنید چقدر دل آدم به درد میاد یه پدره، غمخار، دلسوز پرت ای که، کلی سرد و گرم روزگار را رو چشیده خون دلها خورده تا از حقایق آگاهی پیدا کرده حالا پسر جوانی دارد شیطنت می کند گوش به حرفای پدر نمی ده. دل پدر رو به درد آورده به پدر میگن چرا به این پسر چیزی نمی موعظه و بگه چی بگم وقتی فایده ندارد قطع امید کرده ام هرچه میگویم در گوشش فرو نمی رود پس لا رعی لمن لا یوتا امیرالمؤمنین پدر غمخار امت اسلامی که تمام وجودش عشق به تعلیم و تعلم و, و تربیت و رشد جامعه اسلامی بود و میخواست مسلمان ها را اوج بده و بالا ببره انقدر ناسفاسی کردند انقدر قدر ناشناسی کردند که مجبور شدن سکوت کنند و در جواب اینکه چرا نظر نمیدهید بفرمایند لا رعی لمن لا یوتا. همین معنا در سطح بالاتر برای پروردگار عالم مطرحه پروردگار فرمودن اگر شما استفاده بکنید منم به شما کمک میدم والذین جاهدوا فینا لنهدینهم سبُلنا ان الله لا یغیر ما بقوم حتى یغیروا ما بأنفسهم اینا در قران است اگه شما نخواهید استفاده نکنید قردانی ننمایید که خداوند هم کمک نمیکنه پس در جنبه عقل نظری خدایا کمکم کن یعنی من میخوام عقل و به کار بندازم تو هم کمکم کن مطالب رو بفهمم اما خداوند قدرت دیگری هم به من داده عقل عملی عقل عملی در بایدها و نبایدها نظر میده میگه نباید این کارو کرد باید این کارو کرد نباید این جوری شد باید این جوری شد مثلا اگه الان یه ظرف غذایی جلوه من باشه در هست و نیستش کسی که این غذا مسموم استه پس من معرفت پیدا کردم که مسموم است از این است یک رابطه ای با خودم میفهمم میگم پس نباید خورد اون عقلی که خدا به من داده میگه اگه میخوای خود تو حفظ کنی زنده باشی سم وارد بدنت شد میمیری حالا که این غذا مسمومه پس نباید از این غذا خورد از این است و نیست با این نباید من مسئله رو خب ما اگر خداوند به ما شناسند اینا تصویل شیطان است شیطان است که به ما میگوید خلاف کن شیطان هست که داره تصویل نفس میکنه شیطانه که باطل رو داره تزیین میکنه پس نباید به حرفای شیطان گوش داد اینجا لذا از خدا میخوایم امدادم کن مددم نما که این قدرت خیشتنداری رو در مقابل اونچرا که شیطان میخواد در وجود من ایجاد کنه من توان داشته باشم بیستم ایستادن کار منه ولی نیاز به کمک دارم مثلا بچه هایی که تازه میخوان را بیفتن دقت بکنید یه زمان بزرگتر زیر بغل بچه رو میگیره نگهش میداره و آروم آروم راه میبره اینجا عامل روی پا استادن و او رو عرکت دادن این بزرگتری است که داره انجام میده اما یه وقت این بچه تازه داره را میفته یا بیماری است مدتی پاش تو گچ بوده حالا پاش شده میخواد آروم آروم را بره به یکی میگه من دارم تمرین میکنم هوای منو داشته باش یعنی چی؟ یعنی نه اینکه شما حرکت کن من میخوام را برم ولی شما هوای منو داشته باش میخوام کمکم باشی اگه دارم میافتم زیر بقلمو بگیر اگه الان خطری پیش اومد دلگرم باشم شما داری کمک میکنی این بیمار اگه تو اتاقش تنها باشه در حالت تنهایی تمرین را رفتن وحشت میکنه میگه هر آن ممکنه بیفتم کمکی هم ندارم اما دو تا پرستار کار در کنارش باشن میگه اینا این طرف این طرف دادن من پس آروم آروم شروع کنم به حرکت امام سجاد علیه السلام به ما میفرماید شیطان دشمن خطرناکیست که میخواد تسبیل نفس کنه، اما شما خدا دارید، به خدا پناه ببرید، فسته بالله که اول این دعا به ما یاد دادن و در آیه قرآنم اومده بود که خوندم، حالا موارد فسته بالله رو داره بیان میکنه، یه معناش اینه، خدایا من سعی میکنم جلو شیطان بیستم. من میخوام حرفاش گوش ندم اما هوایی منو داشته باش کمکم کن من به تنهایی نمیتونم این راه رو طی کنم اگه تو مدد کنی من دلگرم میشم خدام وعده داده ادعونی از تجب لکم منو بخونید منم اجابت میکنم منو بخوانید اجابت میکنم آیا این خوندن فقط اینه که خدا من خونه میخوام من بخوام خدا هم میده فقط اینه؟ یا خدایا قرض دارم غرض منو ادا کن خدا هم کمک میکنه قرزمو میده یا اگر بگم خدایا میخوام تصویل نفس رو بفهمم خدا کمکم نمیکنه. خدایا میخوام شیطنت شیطنت رو بیشتر متوجه بشم. خدا در اینجا مدد به من نمیکنه. خدا یا میخوام در مقابل تصویل شیطان بیستم و خودمو کنترل کنم شیطان معیوس بشه در اثر معیوس شدن تو خونه دل من لانه نکنه توتون ایجاد نکنه اگرم وارد شده خارج بشه یا از تو کمک میخوام اصلا جوری یاری هم کنی که شیطان نتونه وارد دل من بشه خب خدا جواب نمیده اما جواب دادنش منوط به اینه خودش فرموده تو حرکت بکن. گامتو بردار برکت هم از من حرکت انت تق الله يجعل لكم فرغانا ومن يتق الله يجعل له مخرجا این قسمت اول مربوط به ماست قسمت دوم امداد الهی پس خدایا من میخوام که به من معرفی کنی خب بخوام خدا هم قادر مطلق است عوامل معرفیشو سر راه من قرار میده مثل اینکه به استادی میگم استاد به من بفهمون چه چیزایی نمیذاره من تو درس موفق بشم دوبار استاد میگه سه بار میگه ده بار میگه کتاب راهنمایی میکنه من هیچ کدمو گوش نمیکنم دفعه پنجم بپرسم میگه دیگه جواب نمیده برای اینکه هر چی گفتم گوش نکردی پناه بر خدا ما رابطمون با خدا اینجوری باشه که خداوند دیگه ما رو رها کنه به حال خودمون شما شاگرد تو کلاسی رو در نظر بگیرید اگر استاد معیوس از هدایتش نباشد میگه حالا باز نگهش دارید حالا یه جور توجه میدیم یه جور تذکر میدیم ولی در چه صورتی استاد میگوید این شاگرد رو از کلاس بیرون کنید این دیگه صلاحیت یادگیری نداره این دیگه حاضر نیست گوش بده. این ارزش تعلیم و تعلم رو زیر پا گذاشته ما هم در بعد معرفتی اون چرا که خدا سره را خدا عقل به ما داده به کار میگیریم خدا دل به, کار به ما داده به کار میبریم خداوند انبیا و اولیا فرستاده گوش به حرفاشون میدیم این همه بزرگان در طول تاریخ عوامل هدایتی رو نوشتن در اختیار ما گذشتن چقدر اعمال میکنیم. در مقام عمل هم خداوند راه به ما نشون داده چگونه در مقابل شیطان بیستید؟ حالا اگر در این دعا می خواهیم که و ازا عرفتناه و فقناه و چون شیطان و تصویل شیطان رو به ما شناسوندی پس یا ما را در مقابل شیطاناتهاش نگهدار نه یعنی ما کاری نکنیم همه کارا خودت انجام بده یعنی مددم کن که من بتونم این کار رو بکنم خدایا یا یاری من بفرما تا در مقابل وسابس شیطانی هم صاحب معرفت شویم و هم قدرت عمل کردن این معرفت که اون کرا که شیطان باطل, در باطل رو در نظر ما زیبا جلوه میدهد قاطعانه جبهه بگیریم و نقطه مقابلش عمل کنیم تا شیطان از ما ناامید شود الله و سلام علیکم